داره به گرفتن آرش اخه من چطور دلم رازی شه بسرمون بگیره و بساس کنم آرش همی روز میره هره همشه برواز داره تو به این خواهر شک شکلت چرا نمیره آگاهی نمیفهمم چرا این کار نمی کنی آرش تلفن تو جواب نمیده نه سه چهار روزه که دیگه با هم تماس نگرفته چلال هم در رابطه با اون دختر خیلی تون روی کردم نراحت <تصفيق> ولی که تون رفتی ولی بالاخره تکریف تو با خودش مشخص کرد از یه طرف میگی اونا یه چیزی میدونن از تو پنهون کرده. از یه فرم ناردی که تند رفتیم خبه یه فکری تو سرمه از دیروز همینجوری یه فکری تو سرم داره میچنه خب بگو میگم شاید شاید به خاطر دبایی که پیجمان خدا بیامورز با شادی کرده بود آرهش قاطی ماجرا شده باشه یا شاید اومده پادر میانی کن و دهبا شده حاسم شما رو آقا بده من نه ترسیم خواهد باش صحبت کن چیزی نمیدیم یکم برات پول آورده هم جد از نمونی بگیر برای آزاد کردن خونم پول گذاشتی الانم هم که این دولارا من چجوری جبران کنم نمیخواد جبران کنی فقط برو بله سلام آقا راش دکتورم کی دکتر دوست قاسم چیزی شده؟ شما حد بگی چیه؟ آرشان خاصه مثلا حالش خوب نیست دیگه نمیتونه راه بره. این مسایل حسابی اون رو از با انداخته میخواد تو رو ببینه باهات حرف بزنه من دیگه ایچ حرفی ندارم خارم به چوبشون گفته آرشان این مدت همیشه کنارش بدی من الان دلش میخواد با حرف بزنه گفتم ای حرفی ندارم خود حافظ کی بود؟ به این چه هیشکی؟ هیشکی نمودم. با تو هم میگم کی بود تلفن؟ او بود. میگه پیرمرد مرد خوب نیست. این خیلی طبیعیه. فقط تو احساساتی نشون. من شب میمتونم بالا توی برامت فروتگاه. من هم زندگی خودم هم زندگی تو رو تباه کردم تو که نمیخواستی اینطوری بشه الان فقط جون تو مهمه نباید بمونی دستگشی کی میدونه بعدا چی پیش میاد؟ رونا میدونی فرار یعنی چیه یعنی اول در بدری. تو تصمیم تو گرفتی تو رو خودا دیگه به این چیزا فکر نکن من شب میم دنبالت میبرمت باشه کاش خونه رو فروخته بودم الان من وضعیت نمیدونم چی میشه همین این که من دیدم داغون شده اصلا پکیده. باید روز روست دوری سوش کنم. تعمیر هست؟ آره ولی راحت ده دوازن میلیون خرده شد. شاید هم بیشتر ده ده دوازن نه که سر کارم نیستی؟ سر کار نیستی من میگم یه مدت بیا همین تعمیرگاه کنار دست خود من وایسه ها من توان رو بالا نمیتونم بدم آم ولی بلاخره یه پولی در میاد دیگه پا چی برزه ایچی نخور بابا من خودم کمک میکنم خونه رو ردیف میکنم میخوام من اون باسم رو میدنم برای چی بابا اونو همین الانم اتمالا شاکی هن که تو با وسیقه آزاد شدی باسم شک داشت من پسرشو کشته الانم بعید شاکی باشی من میگم نرخ هلکی هلکی شعر میشه بعد برم از از سوال دارم کلشقی دیگه حرف کش نمیدی آخر کار خودتو نکن حالا عجله نکن باید دیدن قاسم یه استاکاری از آدم منصفی من بهش یه زنگی بزنم بره خونه رو ببینه بکنم بشه راضیش کرد کار تعمیلاتو شروع کنه ما بهش خرد خرد پول بدم من هیچ چی پول ندارم نه آدم منصفیه راه میاد با هم حله سلام سلام مادر نرفتی سر کار؟ وصلا نعداشتم یعنی چی؟ رامین که دنبال کارهای کارخونه از. آره شم که نیست شما مگه نرید چی میشه؟ نکنه همه کارها رو سپردین دست ندا رونا این روزای هیچ سر از کارهای تو در نمیارم چه اتفاقی افتاده برات مادر؟ چیزی نشد تو آرشی که اینقدر دوستش داشتی گذاشتیش کنار میخوای با کامیار ها رو کنی من به من میگه چیزی نشده با آرش زنگ میزنم جواب نمیده خب بگو کجاست من چه میدونم آرش کجاست مامان؟ یه بار به من گفتی مشکل آرش این دختره نیست. نمیدونم افتاده تو درد سر یه داره یه ماجرهی براش پیش میاد با شما به من میگو آرش چه اتفاقی براش افتاده من از آرشی که خبر ندارم نمیخوامم داشته باشم باور نمی کنم تو بچه منی بزرگت کردم از صداد نگات نفست میفهمم تو دلت چی میگذره هر اتفاقیم بین تو آرش افتاده باشه این روز برای من روشن تو این پسره رو هنوز دوستش داری نمیخوام بزنم. منم نمیخوام بذارم دوباره اون اشتباهو تکرار بکنی. دفعه قبل خودم حلت دادم که با کامیار ازدواج کنی، بری سر زندگیت. این دفعه نمیذارم. نمیذارم چی مگه من بچه هم بچه نیستی، ولی مثل بچه ها رفتار میکنی خودت نمیفهمی. تا چند وقت پیش نمیتونستیم اسم کامیار جلویات بیاریم. حالا چی شدی تا بهت پیشنهاد ازدواج زدی، گفتی خب، مامان من فکرامو کردم، تصمیمم هم هم گرفتم. رانا، زندگی سوخی بردار نیست، مادر. تو کامیار اونقدم که فکر این آدم بدی نیست. ولم کنید دیگه نمیخوام ولت کنم. چون نمیدونی چه بلایی داری سر خودت میاری. چرا مثل دختر بچه ها با من رفتار میکنین؟ گفتم تصمیم ما گرفتم فکر کنم انقدر بزرگ شدم که بتونم اختیار زندگی ما داشته باشم. اینجا بعد بابا واسه من حرف که داغ دلشو تازه کنی کی برات سند گذاشته اومدی بیرون منم گذایدم حالا ببین کی اینجاست قاتل بسرت اومده سلام اومد آز. سلام بزوبیر تو حرفی اگه در نمیز. بابا همه ی آتش از گور این بلند میشه این دنبال انتقام بود وگرنه اگه رقم مزایده رو لو نداده بود به اون بهرامی هیچ کدوم این اتفاقا نیفتاده بود. پژمانم آمارو نشسته بود تو خونه. خانم شما کجا کجا مطمئنین خاطر آقا پژمان این مستر او و مزایده رب داره؟ چز یکی رفته بود دزدی شاید چه اتفاق دیگه‌ای افتاده نمیدونم من شک ندارم عقل برادرم به دعوا، مزایده و این حرفام هر بود. واینا یعنی پژمان به کسی کاری نداشت. وا بز بیا تو ببینم چی میخواد بگی. مزایده تو نمیشه فقط مستوالی عزتون اشتا تو به پنورس چون مغزتون آتیش زدین کلی پولت بیمه گرفتین جنسی بابای من همه سوخ من فقط اما نمیدارم چون از جای جنسی بابای من خبر داشتین گرم مستوالی کلی برموان نمیتونستی این سوال سوالو قبل از این بری به مائسرا اون براس غری بچه‌یمن بیاد میگازم بپرسی تو موقع شک نداشتم حالا خلاص چه فایده اتفاقی که نباید اون بیفته افتاده آقا سیم جون هرکی دوست داری یه کلام به من بگو شما از جای جنسه بگو من خبر داشتم خدا قسم که روح منم خبر نداشت حسنم نمیفهمی یعنی تو تازه هیچ نمیدونی مصیبت سر خانواده‌ی منو بردی تو نمیدونستی تو اتفاقا همه چی ها میدونست دانشه من مارده اون شد رم تو تازه اومدی از بابای من بپرسی از جای جلز خبر داشته یا نه الان این کم دیر نیست خب یه لحظه خودتون روزن این جای من من پنج سالم بود با اون چشم چشتم سکسکر کرد مورد اون من, من کجا میرسم و آغا این خبر نداره باید می‌خواستم آقا رو بکشم این همه نقشه‌ نمی‌کشیدم که برم تو ماهی‌سرا و که بخوام رقم مزایده رو بفهمم من قاتل نیستم خانوم الانم پشیمونم اومدم جبران کنم فقط بهم بگید چیکار باید بکنم من نمی‌گم من چی کار کنم برو چشم هر کاری شما بگید نم بکنم خلاص من مرده دیگه هم, هم برنامه‌ای میخوای جبران کنی گور تو گم کن خانوم دیگه من پیدا نشی سف... گور شو خانوم خانوم خانوم ما فشت ها نمیمونه. باطل آقا پشمان پیدا میشه. خاوم ب دیگه ساله. اما از اینکه به این که دلداری بدی امید بدی همشطوری تو دلم رو خالی میکنی بله برای که نمیتونم به دروغ بگم. آرش جان کاری که داری میکنی تاش هیچ چیز غیر از پشیمونی. ما این بح و چندبار قبل با هم باهم کردیم من چاره ای ندارم بفر چرا داری؟ ولی نمیخوای انتخاب کنی. انتخاب کردن ادام انتخاب نیست به ساله؟ از ام از که از خیلی بهتر بود. رفاقاتو دا یکم تموم کردی. نه هر اشجا. من اگه معرفیت میکردم رفاقاتو تموم کرده بودم. همیده بود تو الان لوت میتند از چرا داری به این چیز فکر می‌کنی؟ حالا فقط بعد فکر این باشه که بری خودتو نجات بدی از مادرم خودحفظی نکرده؟ تو که دیروز دیدیش بهش داری آره ولی ازش خودحفظی نکرد بسیده پروت که بیستنی بزنی قبل از رفتن هم ببینمش دیگه هیچ وقت نبینمش فرام دوشان وقتی خونه نمیری، میگی معتصاش های چیزای فهمیده باشه اونجاری زیر نظر گرفته باشه خب الان دیر برده میتونیم بریم یه سرو بوشیات بدیم اگه کسی نبود من میرم تو باشه دردسر میشه برات مادرمو ماده نمیرم. فکر از اکرم شما های. نمیدونم بدونم من چی کار میکنی نگرون ما نباش مادر سال پردم تنها تو نذاره اگر هر کاری داشتین بهش بگین باشه امش تخصیر من من اکه حرف نمیزده بکنی بشه گفتم به دیگه این حرفو نذاره دیدم که سامان آزاد شده من دیگه خیالم راحته اما سامان پسر خوبیه میتونم با هم خوشبخت بشه یعنی دخترمو عروس کنم بدونه حضور برادرش؟ آخه اگه میشه آیت میشه چهت بدونه بابا سخت بود ولی ما از پسش بر اومدی یعنی شما از پسش بر اومدی تاره خانم از دیمه بردم شما همیشه قوی بودی. الانم هم باید باشی. شادی فقط شما آورداریم آمون. یه دوباره میبینامه. نه دومه. من هر جا برم بهتون خبر میدم. آره. من کاری که داری می درسته یا نه نمیتونم هم بگم نرو. اگه بمونید. کارم کاری درست نیست. من دیگه باید آت برم. شادی. حالا یه من با آتوم خودمو. کار از اینیکس سخت نیست نگو. خب. خودم. राम uh -huh. uh -huh. چی دوست این این دیگه آخرین باری یکی هم دیگر رو میبینیم رونا نه نفرموش کن نمیتون رو دونبازه زندگیت با من هیچ جای نمیرسی قول بده که میری قول بده بگرنه نمیره یالا لی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 مهربونی ایش نازنینی ایش آخریم تیکه این جورچینی ایش مهربونی ایش نازنینی ایش آخریم تیکه Abuni, yeah yeah, Nazani, yeah yeah, Oharin, Jurchini, yeah. باسپورس چی شده بود عرضی؟ آقا یه خبر خوب یه نفر رفته پیش پلیس رو به قصد پژمان شریفی اعتراف کرده که اعتراف کرده؟ همین یکی دو ساعت پیش الان کجاست؟ همینجاست چند دقیقه پیش رو بردنش بریم نشونم برای ایشونم پاشو پاشو نمیخواستم این اتفاق بیافته پیشمان حرفایی زدش که من یه از خودم بیخود شدم پس و شدیم کتک کاری کردی منحولش دادم من حسن فکرش هم نمی کردم از پنجره پرچه پایین چرا همون موقع رو خبر نکردی اصلا نمی باید چی کار کنم درسیده بودم اولش فکر کردم مرده ولی بعدش که دیدم زنده است نمی خواستم کسی بفهمه. برای همین خودم بسوندمش بیمارستان بس چرا به اون حالش تو حیات بیمارستان بیلش کردی و رفتی؟ گفتم که ترسیده بودم نمیتونستم ببرمش داخل حتما بعدش بعدشم که دیدم پدرش تنهاست رفتم کمکش چرا الان خودتو معرفی کردی؟ مگه نگفتی بیلیت داشتی میخواستی بری؟ من یه بار هم بیلیت گرفته بودم که برم در پشمان بد شد بردمش خونه تا دکتر بیاد بالای سرش اون روزم پروازم از دست دادم و نرفتم این دفعه چه اتفاقی افتاد که نرفتی؟ اتفاقی نیفتاد فقط نتونستم برم چرا وقتی امیر گودرزی رو دستگیر کردیم خود تو معرفی نکردی؟ اونقا هنوز تردید داشتم نمیدونستم باید چیکار کار کنم ولی وجدانم هم قبول نمی که تو زندان بمونه برای همین برای صنعت گذاشتیم حسینی تو ازش خبر نداری؟ اگه سیم کارت گرفتن چقدر طول میکشه خیلی خوب حالا اگه خبرشت به من خبر بده من مگه فهمیدم بهت میگن خدافز چمچنش زودتر زنی نزدی نمیتونستم اگه اتاق نگرفتی؟ تلفن نداری؟ نه یعنی من نرفتم استان نرفتی؟ چرا؟ آره چه؟ نتونستم یعنی الان کجایی؟ تهرانی؟ من من خودم معرفی کردم الان هم دارم از آگاهی زنگ میزم آگاهی؟ آره چه رای کارو کردی تو که داشتی میرفتی؟ آره از گیت هم رد شدم. اما نهتونست. صادی راست میگفت. اگه فرار میکردم دیگر راه برگشتی نداشت. یه اون باید با عذاب وجدان زندگی میکرد. آره چه آره رای کارو کردی؟ میدونی حکمت چیه؟ الان آره نگران نگه به چه حال میشه شادی تو بار باید صحبت کن برش توضیح بده که چرا این اتفاق گفته باشه آرش تو فکر میکنی اگه به فرمه سرشو کشی من باش حرف بزنم استا آقا بریم من باید برم آرش دفت قد نکن الو الو الو مدر آرش بریم آقا ای شریفی، شما از چیدن این خبر تحجب نکردین میدونست این آرش مردی قاتل پسرتونه؟ نه، نمیدونستم من فقط میدونستم که آرش و شادی یا چیزی رو از من پنهار میکن می شادی جوا مردی بله تو مویسرا برای پسرم کار میگرد این دختر این همه وقت میدونست که برادرش قاتل بکی بره ولی هیچی به من نگفت چه تحجابی هم نداره برادرشم الان نارش کجاست توی بازداشتگاه. عبدت موقت تکلیفش که معلوم بشه میفرستنش زندان های بازپورس چیزی که عجیبه اینه که این پسر تمامی مدت در اختیارم بود عصای دستم بود هر کاری ازش میخواستن دریغ نمیکرد این میدونسته که قاتل پسر بله چطور از کرده وارد زندگی من بشه سر صفره من بشیده ببینی من از افکار اون آدم خبر ندارم ولی از وجناتش معلومه که آدم شرری نیست و دلیل درگیریش با پسر مرحومتون به خاطر عصبانیت آنی بوده احتمالا بعدش هم عذاب وجدان گرفته خاستی جورایی جبران بکنه من اگه بخوام پرونده ی بچه ما دنبال بکنم به کجا باید مراجعه کنم طبیعتم باید بریم دادگاه خالشون به وقتش خبرتون می خونم نظری اینا یه لیست از پیشنهادات و انتقادات این هفته است که جلی انتقادات شما رو تلفونشون هم نوشتیم من. که خونم نظری هفته بعد تو جلسه هست من صحبت توبت کنی باشم آسپیگه باشون باشم خیلی سلام. حالا. حالا شما افوتیم. سلام. خانو نظری هستم. خانو نظری سلام. سلام ارش چود سهر کار خاله. چی کار داری؟ اتفاقی افتاده؟ به تو رابطی نداره. چیزی شده؟ بهت گفتم چیکار داری؟ هیچی. ما بگم امشب میخوایم میایم خونه. برو گورتو گم کن از اینجا دیگه من تو را نمی‌شناسم. این حواست نیست چی داری میگی. داشتی چی گفتم؟ گفتم برو گم شو من یار. تو با هم یه قول و قراری داریم یادت رفته؟ مو من ندارم. مجبورم چند وقت گفتم برو گم شو یعنی میگه یادترافته آره شو چه دردسریه؟ از از اونه ایر یا منو کشو آدم نظری همه چی خوبه میخواستم ببینم قلو قرار ما سر جاشه دیگه نه خب پس اگه موافق باشی میتونیم قراره عقد رو بذاریم بسیار خوب پس من منتظرم خدافزم چه مارتزا چقدر زهنگ نزنیتون آقا میار بدبخ شدی یعنی چی ممکنه من رو دستگیر کنم میگی چی شده یا نه آرش رفته خوش محرفی کردی اگه حرفی از کیف بزنه من رو به جرم اقخازی میگیرن میگن قاتله میشناختم و چیزی نگفتم چرا میگی چرا نمیگم امروز تو مایی سر شرکت همه خبر داشتن باز بس شما هم خطریه آگه فکری بکنی به جورت <تصفيق> دارم افتاده ساکتی چی شده اون کسی که آقا پشمان رو ساده بوده گرفتم قاتل پشمان نسکی شد قاتل پشمان نسکی شد خود تو برای چی نشستی؟ درست برای درست برای باید شک آنها نمیشه قیل خواب میمونه میتونیم بیمتون سرد خونه شما رو هم آزاد کنیم شادی منم دیگه آزادم میتونم بیام خواستگاریت بیتونم عروسی عروسیمون رو بکنیم شو خوشحال نیستی. شادی من نگاه اون کسی که آقا پیشمان روز بده بردر روزی که رو آقا پیشمان دعوتون شد دستش خورده بود تو صورت من کبوت شده بود رفتم خونه برای مامانم چهاریف می کردم یادی شاره شما همه چیز فهمید بدون که به ما بگه گفته بودی سراغ آقا پشمان قصد سفتایی منو بگیره تو همه مدت می درستی نی چه چی کار کنم تو رو سختی رو کشیدی برمه روزه ای سختی رو کشیدم بینی تو آرش گیر دادم، آرش برادرم تو کسی که دوستش دارم سکشش رو نمی کردم همچین کار کنه. دیگه دلش طاقت نداشته باید برش وکیر بگیریم هزارتان که وکیر بگیریم تو پدر پجمان رضایت نده فایده ای نداره چون ما دیدن لیدن بدرش هنوز نه رو ندارم که همهش تو خونه زندگیشون بوده نمیدونم الان اون پیرمرد چه و هبایی داره حتم خیلی اسبانی ناراحته خودمون خودمونو برای هر برخوردی آماده کنیم حق دارم من هر توهین و بد بیرایی رو حاضرم بشنوم چارهای ندارم هیچ راه دیگهای وجود نداره حال باید برش وکیل بگیرم ملاقات بخوایم برین دادگاه بخوایم برین ندون وکیل نمیشه من کار وکالتشو رو درست میکنم. اگه کار دیگه هم بود به من بگیرم رونا جان جان. الان بفهمم. پسرم چرا اینقدر رو دوست داره؟ هفت که سرنوشتش این شد. من ناامید نیستم. تا هر مقام که لازم باشه سهم کن. این همه تجربه نفهمیدم که دارن گورم میزنن. مرد حسابی ادارات ادات میکنه. با تماس گرفت گفت میخوام بیان حرف فقط آرش واسه من آرش گردنش زیر تیغه. داره اجرای قصاص اگه بران چیزی رو امضا کنم، بدید سازم. دیگه من برایداتم. فرین دوباره کاروس کنم شریفی. پلیس رفته بود شرکت، سوالی من گرفته بود. من نمیخوام تو پاسوز آرش باشم. من دیگه امید ندارم. قرار این بود که از خاله ام کنیم.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 ما از را رسید روی رابل نشاز دکمه های قلب من دون دونش حل شدم گفتم این ی موجزه است خیر شد به آسمان همه هست او رها دون دون گل شدن مهربونی نازنینی ایاش آخریم جورچینی مهربونی نازنینی آخریم جورچینی خوبت باد با دکم و یه جوری با می کرد که تا هر جا خواستم بتونم بر بکشم یه جوری دش نم کرد که میشد در دریارو مثل لیوان آب یه نفسار بکشم. من چه میدونستم اومده زود بره چه قروبی داشتن خنده های آخرش اقای خدا یه تپش از قلبم مثل پروان نشست روی سنجاق سرش مهربونی ای ایش نازنینی ای ایش آخرین تیکه ایهین جورچینی ای ایش